فصل هفدهم زندگی کردن با برتری خفیف آقایان فوتبال این است وینس لومباردی مربی افسانه فوتبال امریکایی یا همان راگبی در آغاز هر فصل جدید با یک دستش توپ را می گرفت و با دست دیگرش به آن اشاره می کرد و می گفت آقایان فوتبال این است. او هرگز مهارت بازیکنانش را تضمین شده نمیدانست و با وجود اینکه همه بازیکنانش ورزیده و حرفه‌ای بودند، آنها را همچون لوحی خالی و سفید می‌دید. نخستین باری که وینس لومباردی این جمله مشهور را به کار برد، مکس مگی بازیکن مشهور تیم گرین بی پکرز جوابی داد که حتی لومباردی اخمو و جدی هم خنده گرفت. آه مربی، میتوانید کمی آرام تر بگویید؟ حرفتان را خیلی سریع گفتید. امروز جهان کسب و کار یک اصطلاح برای این نوع طرز فکر دارد. هیچ پیشفرزی را در نظر نگیرید. بودایی ها به آن ذهن نوع آموز می گویند. این یک رویکرد مبتنی بر توازع و کنجکاوی است که همواره در جستجوی والاترین اهمیت و معنا در کوچکترین چیز هاست. من نمیتوانم راهی بهتر یا فسیحتر برای ابراز این موضوع پیدا کنم به جز این که بگویم آقایان فوتبال این است. مهم نیست که آرزوهایتان چقدر بزرگ باشند و چقدر رویایی و دست نیافتنی به نظر برسند. حقیقت همیشگی برتری خفیف این است که از گامهای ساده و کوچک ساخته می شود. گامهایی که برداشتنشان آسان و برنداشتنشان نیز به همان اندازه آسان است. خیلی سریع حرکت نکنید و آنقدر هم به خودتان مغرور نشوید که آن گامها را متوقف کنید. به زندگیتان نگاهی بیندازید و به خودتان بگویید آقایان فوتبال این است. از نظر لومباردی توپ فوتبال همان گام اولیه‌ای بود که سفر هزار مایلی بازیکنها با آن شروع می شد. توپ سکه یک سنتی لومباردی بود. حالا زمان آن است که سکه خودتان را پیدا کنید. کدام فعالیت ساده و آسان است که می توانید هر روز انجامش دهید و بیشترین تأثیر را در وضعیت سلامتی، سطح شادی، ارتباطات، پیشرفت شخصی، وضعیت مالی، حرفه شما و نیز اثر شما بر روی دنیا خواهد داشت؟ پیش از این با انجام دادن یک تمرین ساده، زندگی تان را در این هفت جنبه خاص ارزیابی کردید تا ببینید که روی منحنی موفقیت قرار دارد یا منحنی شکست. حالا بیایید دوباره آنها را ارزیابی کنیم. فقط این بار از شما میخواهم برای هر یک از آنها یک مسیر دستیابی ساده تعیین کنید که شامل این سه باشد. 1. رؤیاهای تان را در هر یک از جنبه های زندگی به صورت یک هدف بیان کنید. هدفی کاملا مشخص، واضح و با یک زربل اجل. دو، یک برنامه ساده برای شروع تهیه کنید. منظورم از ساده درست مانند این است. آلمانی ها را پیدا کنید. و سه، یک اقدام روزانه ساده را مشخص کنید که از حالا به بعد متعهد می شوید هر روز و همیشه انجامش دهید. همین حالا یک مداد بردارید و این تمرین را انجام دهید. برتری خفیف و وضعیت سلامتی شما میگویند راه نفوذ به قلب یک مرد از شکم او می گذارد. من چیزی در این باره نمیدانم اما میدانم که شکم او راهی به سوی سرنوشتش است. شاید مهمترین انتخاب شما در هر روز و هر ساعت این باشد که اجازه دهید تقضیه و فعالیت های فیزیکیتان شما را به آرزوهایتان برسانند یا اینکه قبرتان را حفر کنند. حملت به این فکر می کرد بودن یا نبودن. شما نیز باید این سوال مهم را در هر وعده غذایی از خودتان بپرسید و به آن پاسخ دهید. من همیشه ابتدا از جنبه سلامتی زندگیم شروع می کنم زیرا وقتی که اندام خوب و متناسبی دارم بهتر فکر می کنم های بیشتری دارم و درباره همه چیز احساس بهتری دارم. در زندگی هیچ چیزی مهمتر از سلامتیتان نیست و در هیچ یک از جنبه های دیگر زندگی برتری خفیف به این اندازه واضح و مشخص عمل نمی کند چه به نفع شما و چه علیه شما سابقا اقدام روزانه ساده من برای سلامتیم این بود که هر روز حداقل به مدت نیم ساعت بدوم اقرار می کنم وقتی که این کار را شروع کردم برایم هیچ حیجانی نداشت اولین روز یک روز واقعا سخت و رنجاور بود. انجام دادن آن حرکات فیزیکی بسیار سختتر از چیزی بود که تصور می کردم. روز اول فقط ده دقیقه دویدم و در هفته های بعد تلاش کردم تا کم کم زمان دویدن روزانه ام را به نیم ساعت برسانم. اما حتی قبل از اینکه همان هفته اول به پایان برسد، نسبت به ماههای قبل از آن واقعا احساس بهتری داشتم. معمولا به دیگران میگویم که برتری خفیف خیلی سریع اثر نمی کند اما حقیقت این است که وقتی صحبت از تأثیر برتری خفیف در وضعیت سلامتیتان باشد اغلب نسبتا سریع به نتایج مثبت دست پیدا می کنید این همان چیزی است که در هنگام دویدن برای خودم اتفاق افتاد این روزها اقدام منظم روزانه من انجام دادن 35 دقیقه نرمش روزانه است وقتی این را میگویم اغلب از من میپرسند چرا 35 دقیقه جوابش خیلی ساده است. من فهمیدم که این مقدار نرمش درست همانند مطالعه 10 صف از یک کتاب خوب در هر روز است. اگر می گفتم چهل و پنج دقیقه یا یک ساعت نرمش می کنم می روزهایی پیش میآید آید که برای انجام دادن آن به سختی می افتم. اما حالا می دانم که هر چقدر هم که در یک روز مشغله داشته باشم باز هم می توانم سی و پنج دقیقه را به نرمش کردن روزانه اختصاص دهم. از زمان انتشار ویراست اول کتاب برتری خفیف در میان هزاران نفری که این کتاب را خواندند و داستانشان را برای ما نوشتند تعدادی پزشک نیز حضور داشتند که گفتند اصول برتری خفیف را به رژیم سلامتی که به میمارانشان توصیه می اضافه کردند. به دست گرفتن کنترل سلامتیتان فقط با انجام دادن چند اقدام روزانه ساده امکان پذیر است. اندکی زمان بگذارید و برنامه برتری خفیف مناسب خودتان را برای سلامتیتان تهیه کنید. شما نباید خودتان را حتما به این برنامه محدود و پایبند کنید. همیشه می توانید چیزی را که می نویسید تغییر دهید و اصلاح کنید. برای این کار از مداد استفاده کنید فقط لطفی در حق خودتان بکنید این کار را پشت گوش نیندازید و به سراغ مطالعه ای ادامه ای کتاب نروید زمانی را به این کار اختصاص دهید و هر یک از این بخش را تکمیل کنید حداقل ایده های ساده و سریع را برای شروع یادداشت کنید همیشه می توانید مواردی را به آنها اضافه کنید یا آنها را تصحیح کنید روش کار برتری خفیف به همین صورت است. نباید گمان کنید که باید همان اولین بار آن را به صورت کامل انجام دهید. برتری خفیف و سطح شادی شما. اگر سلامتی بیاید، شادی بلافاصله به دنبال آن می آید. وقتی که شروع به تمرین اقدامات روزانه ساده ای می کنید که سطح شادیتان را بالا می‌برند، متوجه می‌شوید که شادی همه جنبه های دیگر بهبود فردیتان را نیز تقویت می کند. یادتان باشد، موفقیت منجر به شادی نمی شود، بلکه شادی است که موفقیت را برایتان به ارمغان می آورد. شادی بیشتر و بزرگتر چیزی است که منجر به موفقیت‌های بیشتر و بزرگتر می‌شود. و خلق شادی بیشتر بسیار ساده‌تر، آسان‌تر و تر از چیزی است که بسیاری از مردم گمان می‌کنند. اولین گام برای افزایش سطح شادیتان در که همین موضوعی است که تحقیقات روانشناسی مثبت در طی 15 سال گذشته به ما گفتند. مهمترین عوامل مؤثر در سطح شادی روزمره شما اتفاقی نیستند. موروسی هم نیستند و از طریق جنها نیز انتقال نمیابند همچنین به دلیل وقایع بیرونی هم نیستند مهمترین عوامل موثر در سطح شادی شما اقداماتتان هستند یعنی همان کارهایی که هر روز انجام می دهید انبوه تحقیقات مربوط به شادی را در سه حوزه طبقه بندی کرد در واقع شادی شما تحت تأثیر این سه مورد است یک، دیدگاه شما اینکه رویدادها و پیشامدهای زندگی روزمرهتان را چگونه ارزیابی میکنید. دو، انجام دادن اقدامات مشخص با تأثیرات مثبت. چیزهایی مانند یادداشت کردن سه چیزی که به خاطرشان سفاس گذارید فرستادن ایمیلهای تشکر و قدردانی، انجام دادن کارهای مهربانانه اتفاقی، آف و بخشش دیگران و مراقبه. و سه، چیزهایی که زمان و انرژی تان صرف آنها می کنید، خصوصا روابط مهم و فعالیت معناداری که زمانهای زیادی را روی آنها سرمایهگذاری می کنید. درست مانند یک برنامه بدنسازی شخصی می توانید به آسانی برنامه تمرین شادی خودتان را ایجاد کنید. حتی به مربی یا تمرین دهنده نیز نیازی ندارید. اگر کارتان را اشتباه انجام دهید هیچ مشکلی پیش نمیآید در حقیقت در اینجا اشتباه کردن معنایی ندارد. مهمترین چیزی که باید درباره افزایش دادن سطح شادیتان بدانید این است که این کار را می توانید دانسته و آگاهانه انجام دهید. اما به صورت خودکار یا فقط با گفتن این جمله که من تصمیم گرفتم که شادتر باشم اتفاقی نمی افتد. شادی مانند سلامتی است و برای تحقق آن لازم است که گامهای مشخصی برداشته شوند. بدون شک هنگامی که در این زمینه چیزهای بیشتری یاد بگیرید، برنامه ها و عادت های شادیتان را بهتر تغییر و توسعه خواهید داد. اما همین حالا دست به کار شوید و بر اساس چیزی که تا اینجا یاد گرفته اید، برنامه شروعتان را تهیه کنید. برتری خفیف و ارتباطات شما. حقیقت کنایه آمیز زندگی انسان این است. مهم نیست دستاوردهایمان چقدر بزرگ باشند در نهایت دیگران هستند که به آنها معنا می بخشند. یکی از دلایلی که فیلم همشهری کین بیش از هفتاد سال بعد از اولین اکرانش هنوز هم یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینما محسوب می‌شود این است که بیان قدرتمندی از این حقیقت ارائه می‌دهد چارلز فاستر کین با وجود میلیون‌ها دلار ثروت، قدرت و دستاوردهای فوقالعاده در ساعت پایانی عمرش فقط با یک اندیشه از پا درآمد. اندوه و عذاب اینکه در هشت سالگی از دنیای کودکی بیرون کشیده شد و به تنهایی پا به دنیای بزرگ سالان گذاشت. آن مرد بزرگ هیچ کسی را نداشت که پیروزیها و دستاوردهایش را با او تقسیم کند. همه های دنیا کوچک خواهند بود اگر کسی نباشد که آن ها را با او تقسیم کنید. روابط شما همانند سلامتیتان از طریق موارد بسیار جزئی و کوچک رشد می‌کنند یا از بین میروند. از آنجایی که بسیاری از مردم از وجود برتری خفیف آگاهی ندارند، پیشرفت در روابطشان برایشان مانند یک راز است. چه چیزی موجب می شود که با گذشت زمان روابط زناشویی یک زوج غنیتر شود و روابط زوج دیگری کهنه پوچ و تلخ؟ در نوزده مورد از هر 20 مورد جواب قابل ملاحظهی برای این سوال وجود ندارد. در واقع چیزهای کوچک هستند که روز به روز و با گذشت زمان روی هم جمع می شوند و به رضایت تزلزل ناپذیر یا بدبختی بی بازگشت تبدیل می شوند. همین چیزهای کوچک هستند که به حساب میآیند به یادماندن روز تولد خرید هدایای کوچک گفتن جملات محبت آمیز، به یادماندن رنگ مورد علاقه همان پنج دقیقه زمانی که در یک روز پرمشغلتتان به شنیدن حرفهایش اختصاص دادید تشویق و دلگرمی یادآوری اعتقاد و اعتمادتان به او این حکمت برتری خفیف است. آن افکار و اعمال ناچیزی که به طور شگفتانگیزی انجام دادنشان آسان و به طور تنزامیزی انجام ندادنشان نیز آسان است. آینده همه روابط فعلی شما درست همانند سلامتیتان در گروه است که همیشه در دستان خودتان است. انتخابهایی که بزرگتر از یک سکه یک سنتی نیستند. کلیدش این است که انتخاب کنید و به انتخاب کردن ادامه دهید. زمانی را به تفکر درباره روابطتان اختصاص دهید و ببینید چگونه می توانید با استفاده از یک برنامه برتری خفیف آن روابط را امیغتر، قدرتمندتر و قنیتر کنید. احتمالا این مورد خصوصی ترین جنبه زندگیتان است.